سلام و صد سلام خدمت همه شما شنوندگان خوب و فهیم کانال هزار افسان امروز میخوام قصه پرنده آبی رو براتون بگم بریم که با همدیگه دیگه بشنویم یکی بود یکی نبود روزگاری پادشاهی بسیار ثروتمند زندگی میکرد که دست بخشنده‌ای داشت و سر کیسه های طلا و نقره رو همیشه شل میکرد اون هیچ توجهی به حفظ ثروتش نداشت چون همسرش ملکه را از دست داده بود پادشاه خودش رو توی اتاقی کوچیک حبس کرده بود و از شدت اندوه سرش رو به دیوار میکوبید درباره که واقعا نگران تندرستیش بودن به سرهایی اسپر بین پردهها و دیوارها آویختند تا هر قدر که میخواد سرش رو به دیوار بکوبه و آسیبی نبینه تمام زیردستانش به دیدنش می و هر چی به فکرشون می رسید برای آرامش خاطرش می گفتن. بعضی براش دل می و اندوهگین می شدند برخی هم باهاش همدلی و حتی خوشبش می میکردند اما هیچ کدوم نتونست کمترین تأثیری روی اون بگذاره در واقع به نظر می رسید که اون هم اصلا به حرفاشون توجهی نکرده سرانجام بانویی که ردایی سیاه پوشیده بود و بسیار اندوهگین به نظر میرسید پیش اون رفت. اون اونقدر گریه کرد و زار زد تا بالاخره نظر پادشاه رو به خودش جلب کرد. بانو گفت که از راهی دور اومده تا به غم و پادشاه پایان بده. چون خود اون هم شوهر خوبش رو به تازگی از دست داده و اومده پیش پادشاه تا در کنارش باشه. و عشق و اندوهش رو با اون قسمت کنه اون گفت به خوبی میدونه که پادشاه چه حالی داره این حرف ها سوگ و اندوه پادشاه رو دو برابر کرد بعد برای بانوی افسرد دل درباره صفات پسندیده ملکه از دست رفته داستانهای داستان طولانی تعریف کرد اون بانو هم درباره خوبی های شوهر از دست رفته برای پادشاه سخنها گفت. زمان میگذشت و همه چیز به وفق مراد پیش می‌رفت. به طوری که پادشاه از کوبیدن سرش به بسترهای پر کاملا دست برداشت و از چشمان آبی و بزرگ بانوی مهمانش هم دیگه مثل قبل اشک نریخت. به تدریج درباره چیزهای مورد علاقه پادشاه حرف زدند و با شگفتی تمام باید گفت که در یک چشم برهم زدن تمامی ساکنان اون سرزمین از شنیدن این خبر که پادشاه دوباره ازدواج کرده غافلگیر شدند ازدواج با بانوی اندوهگین البته پادشاه دختری داشت پانزده ساله که نامش فیوردلیسا بود اون زیباترین و دلرباترین شاهدختی بود که کسی میتونست تصور کنه همیشه شاد و سرحال بود. ملکی تازه که اون هم دختری داشت خیلی زود به دنبال دخترش فرستاد تا به قصر بیاد. نام دختر اون توریتلا بود و زیر نظر مادر پریمازیلا بزرگ شده بود. اما با وجود تمام دقتی که در تربیتش به کار رفته بود نزیبا بود و مهربان در واقع وقتی ملکه دید که اون در مقایسه با فیوردلیسا چقدر بدخلاق گذشته کاملا دلسرد شد و دست به هر کاری زد تا پادشاه رو نسبت به دختر خودش بدبین کنه به این امید که پادشاه نظر مساعدی به توریتلا پیدا کنه روزی پادشاه گفت که زمان اون رسیده که فیوردلیسا و توریتلا ازدواج کنن پس یکی از اونها رو به شهزاده شایستهی که به دربارش خواهد اومد میده. ملکه گفت دخترم حتماً باید اولین کسی باشه که ازدواج میکنه. اون از دخترت بزرگتر و هزار بار پادشاه که از بحث و جدل نفرت داشت گفت بسیار خوب این به من ربطی نداره. خودت به کارها سر و سامان بده. خیلی زود خبر رسید که پادشاه دلربا که زیباترین و شکوهمنترین شاهزاده در تمامی سرزمین های اطراف بود، سر راهش به کاخ پادشاه سرخواهد زد. همین که ملک این خبر رو شنید، همه جواهراتش رو آماده کرد و تمامی دوزندگان، بافندگان و گلدوزان رو صدا زد تا با شکوهترین جامعه ها و گوهرها را رو برای توریتلا فراهم کنند. اما به پادشاه گفت که فیوردلیسا به چیز جدیدی نیاز نداره. اون یک شب قبل از ورود پادشاه به ندیمه خودش پول داد تا تمامی لباس و جواهرات شاه زیبا رو برداره. روز بعد وقتی فیوردلیسا خواست خودش رو چنان آرایش کنه که در شعن خانواده باشه حتی یک نوار تزینی هم پیدا نکرد. با اینکه به متوجه شد چه کسی بهش حق زده شکایتی نکرد یک نفر رو پیش بازرگانان فرستاد تا از اونها بخواد لباسهای گرانبها براش تهیه کنن کاسبان و بازاریان گفتند که ملکه اونها رو از ارزگ هر چیزی به شاهدخت جدا منع کرده و اونها هم جرأت نافرمانی ندارن پس شاهدخت چیزی نداشت که بپوشه به جز ردای سپید کوچیکی که روز قبل پوشیده بود. موقع ورود پادشاه با همون ردای سپید به تالار پذیرایی رفت و در این نشست که دیده نشه. ملکه برای پذیرایی از مهمانش جشن بزرگی گرفته بود و اون رو با دخترش که شکوه مندان آرایش کرده بود آشنا کرد. دخترش خودش رو با شکوه بسیار آراسته بود ولی زشته چهرش، کاملا واضح بود و پادشاه با همون نگاه اول صورتش رو از اون برگردوند ملکه فکر کرد پادشاه از شرم و به خاطر پرهیز از آزردگی خاطر توریتلا نگاه ازش گرفته بعد پادشاه دلربا پرسید که آیا شاهدختی به نام فیوردلیسا در اونجا زندگی نمیکنه توریتلا گفت چرا همینجاست و با انگشتش اشاره کرد اونجاست اما چون سر و وضع مناسبی نداره خودش را از دید دیگران پنهان میکنه فیوردلیسا از شرم سرخ شده بود به قدری شرماگین و دوست داشتنی بود که پادشاه واقعا شگفت زده شد پادشاه از جا بلند شد در برابر شاهدخت تعظیم کرد و گفت دو دوشیزه بزرگ زیبایی بی‌همتای شما نیازی به آرایش نداره شاهدخت جواب داد سرورم به شما اطمینان میدم که به پوشیدن چنین های نامرتب و ناصاف اینطوری که به تن دارم عادت ندارم اگر پیش از این منو دیده بودی بسیار دلرباتر و زیباتر بودم پادشاه دلربا فریاد زد اینطوری نگو اگر در هر جایی چشمم به شاه زیبا چون تو میافتاد هرگز به کسی دیگه نگاه نمیکردم در اینجا ملک دست بکار شد و به سرعت گفت سرورم، به شما اطمینان میدم که فیوردلیسا کاملا بیهوده تلاش میکنه. گول سخنان نبازشگرانش رو نخورید. پادشاه کاملا فهمید اوضاع و احوال از چه قراره، اما براش مهم نبود. اون فیوردلیسا رو از طی قلب ستایش کرد و سه ساعت تمام بدون مکس باش حرف زد. وقتی که ملکه و توریتلا دیدن، پادشاه چقدر دلباختگی فیوردلیسا شده، امیدشون رو نقش براب دیدند. دیدن. اونها پیش پادشاه بزرگ رفتن و از فیوردلیسا گله ها کردند و اونقدر ازش بدگویی کردند و پادشاه رو ناراحت کردند تا رضایت داد شاه رو تا زمانی که دلربا از سرزمینش دیدن می‌کنه دور از چشم همه در جایی حبس کنه. بنابراین همون شب موقعی که شاه به اتاقش می‌رفت چهار نفر نقابدار اون رو دستگیر کردند و به بالاترین اتاق برجی بلند بردند و اون رو که در اندوهی جانگاه میسوخت در اونجا رها کردند اون به راحتی متوجه شد که باید مدتی دور از چشم شاهزاده بمونه مبادا که مهرش در دل اون بنشینه این بسیار دل سرد کننده بود چون شادخ که خیلی از شاهزاده خوشش اومده بود دلش می‌خواست همسر اون بشه پادشاه دل نمیدونست نمی چی به سر شاه دخت اومده و با بی برای دیدنش لحظه شماری می کرد درباری اون با درباریانی که از اون پذیرایی می و با اون همسخن می شدن حرف می زد و خبر می گرفت. البته اونها به دستور ملکه حرفهای خوبی دربارش نمی زدند و اون رو دختری دمدمی مزاج، شلخته و بدخلاق معرفی می کردن. اونا گفتند که اون ندیمهاش رو عذیت میکنه و با آنکه پدرش پادشاه پول زیادی بهش داده به علت پستی بیش از حدش ترجیح میده مثل دخترکی چوبان لباس بپوشه و پول خرج نکنه. تمام این حرفا پادشاه در رو بسیار آزرد خاطر و پریشان حال میکرد اما حرفی نمیزد و سکوت میکرد. فکر میکرد درسته که اون بسیار فقیران لباس میپوشه اما با شرمندگی بسیار میخواست ثابت کنه که عادت به پوشیدن چن لباسهایی نداره باور نمیکنم که اون با اون صورت دوست داشتنی فردی بد اخلاق و بی‌نظم و ترتیب جوری که اینا میگن باشه نه نه ملکه به خاطر دختر زشت خودش بهش حسادت میکنه و این همه جارو جنجال برا انداخته. درباریان که میدیدند اونچه که به پادشاه گفته بودن خوش آگندش نبوده در تعجب مونده بودند به همین جهت یکی از اونها هوشیاران دست به کار شد و فیوردلیسا رو ستایش کرد. البته مراقب بود که موقع صحبت با پادشاه روبا کسی متوجش نشه. از اون زمان پادشاه روبا بسیار خوشحال شد و هر حرفی رو با علاقه به زبون می آورد راحت میشد حد زد که اون چقدر قدر شاه رو ستایش میکنه بعد از مدتی ملکه به دنبال درباریان فرستاد و از اونها درباره اون چه که گذشت گزارش خواست حرفاشون اون رو بسیار حراسان کرد شاهدخت فیوردلیسا هم هر شب به تلخی گریه می کرد. با خودش میگفت واقعا ساجراور که در این برج دلگیر محبوس باشم و نتونم پادشاه دل رو ببینم حالا که اون اینجاست و همه از حضورش لذت میبرند خیلی بی انصافیه که من زندانی باشم روز بعد ملکه برای پادشاه دلربا هدیه های باشکوه و جواهرات و وسایل گران قیمتی فرستاد جواهری به نشانه شادی نزدیک شدن روز عروسی در بین هدایا بود این جواهر به شکل قلبی بود که در یاقوتی بزرگ کنده شده بود و دورش تعداد زیادی الماس به شکل تیر کار گذاشته بودند پیکرگه‌ی طلایی یک عاشق واقعی در بالای قلب قرار داشت که این رو در دست داشت اما یک نفر می تواند قلبم را زخمی کند تمام جواهر از زنجیری پر از مروارید آویخته بود از زمانی که جهان پا گرفته بود هرگز کسی چنین چیزی ندیده بود پادشاه وقتی اون هدیه رو دید کاملا متعجب شد پیکی که اون اگر آورده بود از پادشاه تقاضا کرد تا اون رو از طرف شاهدخت که اون رو به عنوان جنگجوی دلابر خودش برگزیده بود بپذیره پادشاه فریاد زد عجب آیا شاهدخت فیوردلیسای دوست داشتنی فکر میکنه با این عمل دلگرم کننده و سرشار از لطفش به من محبت میکنه پک شتابان گفت، اه، سرورم، اه، نامش رو اشتباه گفتی، من از طرف شاه دختوری اومدم. پادشاه در روبا به سردی گفت، اه، این توری که میخواد من جنگجوی جوی دلاورش باشم؟ متاسفانه نمیتونم این افتخار رو بپذیرم و هدایای بینظیر را رو برای ملکه و توری تلا پس فرستاد. اونها این کار اون رو تحقیرامیز دونستند و بسیار خشمگین شدن. و محض که پادشاه در رو با فرصتی به دست آورد به دیدار پادشاه و ملکه رفت. موقعی که وارد تالار شد به جستجوی فیوردلیسا برومد. اومد هر بار که کسی پا به تالار میگذاشت به سرعت به سراغش میرفت تا ببینه کیه. ملکه از این وضع کاملا ناراحت و ناخشنود بود اما توجهی نمی کرد و حرفی نمیزد. اون برای شاهزاده برنامه‌های سرگرم کننده ای ترتیب میداد. اما اون کاملا تفاوت بود و فقط می میگفت که دیدار فیوردلیسا با اسدل خوشیش میشه. ملکه مغروران جواب داد: سرورم، پدرش دستور داده که اون تا وقتی که دخترم ازدواج کنه نباید از اتاقش خارج بشه. شاهزاده با رنجش زیاد گفت: آیا این می تونه دلیلی برای زندانی کردن شاه‌دخته زیبا باشه؟ ملکه جواب داد: این رو نمیدونم. اگر هم می دونستم، مجبور نبودم که بگم. شاهزاده از این جواب خیلی ناراحت شد. مطمئن بود که توریتلا مقصره. پس با خشم نگاهی بهش انداخت و با بی از پیش ملک رفت و به سرایی خودش برگشت. در اونجا به بزرگزادی جوانی که از همراهانش بود گفت همه چیزم رو در این دنیا به یکی از ندیمه‌های های دوخ میدم تا شرایطی فراهم کنه که بتونم با فیوردلیسا لحظه‌ای صحبت کنم. بزرگسادی جوان گفت کاری از این ساده تر نیست و خیلی زود با یکی از بانوان طرح دوستی ریخت. بانو گفت که هنگام غروب فیوردلیسا بی کنار پنجره‌ای که رو به باغ باز میشه میاد و شاهزاده میتونه به اونجا بیاد و باهاش صحبت کنه. بعد گفت که شاهزاده باید خیلی مراقب باشه تا دیده نشه چون اون با فراهم کردن این موقعیت زندگی خودش رو سخت به خطر انداخته بزرگزاده خیلی خوشحال شد و قول داد هر چی بخواد بهش بده اما لحظه که میرفت تا این خبر رو به شاهزاده بده ندیمه بدزاد هم پیش ملک رفت و همه چیز رو گزارش داد ملکه فورا تصمیم گرفت دختر خودش رو کنار پنجره ببره. اون تریتلای احمق رو به خوبی آموزش داد که چی بگه و چیکار کنه تا اشتباه نکنه. شبیه بسیار تاریک بود و شاهزاده متوجه نشد که چه کلکی بهش زدن. با خوشنودی بسیار به پنجره نزدیک شد و خودش رو آماده کرد تا هر چی دلش میخواد از عشق و علاقش به فیرودلیسا بگه. نوریتلا همونطوری که آموزش دیده بود پاسخ داد و از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد. شاهزاده ازش تقاضا کرد که همسرش بشه و بعد حلقه از انگشت خودش درآورد و در انگشت توریطلا کرد. شاه بهش بهترین پاسخ رو داد. شاهزاده اصلا در این فکر نبود که دقیقا بگه از دلبندش چه انتظاری داره، اما خودش رو متقاعد کرده بود که اگر از طرف ملک قافل گیر شد، به ترس و ناباوری خودش غلبه کنه. اون از پیش شاهدوخ نرفت تا اینکه بهش قول داد شب بعد هم دوباره اون رو ببینه. تریتلا با کمال میل قبول کرد. ملکه از موفقیت نقشش بسیار خوشحال شد و مطمئن شد که همه چیز به وفق مرادش پیش میره. به محض اینکه شب بعد اومد، شاهزاده به کنار پنجره رسید. با خودش کالسکی آورد که یک افسونگر که از دوستان شاهزاده بود بهش داده بود این کالسکه رو قورباغههای پرنده می‌روندند و شاهزاده از توریتلا خواست سوار کالسکه بشه بعد خودش در کنارش نشست و پیروزمندانه گفت شاه دختم، حالا آزاد هستی دلت میخوات مراسم عروسیمون رو در کجا جشن بگیریم توریتلا با حرکت سر در زیر رداش پاسخ مثبت داد و گفت که پریمازیلا مادر خوندشه و دوست داره جشن عروسی در قصر اون به پا بشه. پس شاهزاده به گورباقه ها که نقشه تمام جهان رو در ذهنشون داشتن گفت به اونجا برن. خیلی زود شاهزاده و توریتلا در حیات قصر پریمازیلا پا به زمین گذاشتن. حتما شاهزاده موقعی که پا به تارار نورانی و درخشان قصر میگذاشت به اشتباه خودش پی می برد. اما توریتلا ردایی رو که با اون سر و تنش رو پوشونده بود با دست محکم گرفته بود و در نظر داشت که با پری به تنهایی ملاقات کنه. اون همه چیز رو به سرعت برگه پری تعریف کرد و گفت که چطور شاهزاده دلربا رو فریب داده. پری گفت اوه دخترم این که کار سختی نیست. اون فیوردلیسار خیلی دوست داره و بدون اون آرامش نخواهد داشت مطمئنم که با ما مخالفت میکنه شاهزاده که در اتاق باشکوهی با دیوارهای از الماس پوشیده منتظر مونده بود پری و توریتلا رو راحتی میدید که در گوشه ای ایستادند و پچپش میکنن. اون واقعا گیج شده بود و خودش میگفت چه کسی به ما خیانت کرده دشمن ما چطور به اینجا اومده اون حتما برای ممانعت از ازدواج ما نقشه ریخته چرا فیور دلیس های دلبند اینقدر عجله داشته زودتر پیش من بیاد؟ اما وز از اونچه که اون تصور میگرد بدتر شد. چون پریمازیلا دست در دست توریتلا جلو اومد و گفت پادشاه دل ربا، این هم شاه دخت توریتلا که بهش قله وفاداری دادی. بیایید فورا جشن عروسی رو بپا کنیم. پادشاه فریاد زد من؟ من با این موجود حقی ازدواج کنم؟ در موردم چه فکر میکنی؟ من هیچ قولی بهش ندادم. پری با خشم داد زد. دیگه بسته. آیا برای پریان هم احترام قائل نیستی؟ شاهزاده جواب داد. چرا بانو؟ من به شما همونطور که شایستتون احترام میگذارم. شاهدخت واقعی رو به من برگردون. توریتلا حرفش رو قطع کرد. من هم اینجا هستم. این حلقه ای که در انگشتم کردی؟ آیا تو نبودی که در کنار پنجره کوچیک با من صحبت کردی؟ پادشاه خشمگینانه فریاد زد چی؟ آیا در تمام این مدت فریبم میدادی؟ کالسکم کجاست؟ دیگه لحظه ای در اینجا نمیمونم پری گفت اوه، اینقدر عجله نکن به پاهای شاهزاده کوبید و اونها بلا فاصله بی حرکت شدن انگار که اونها رو به زمین میخ کرده باشن پادشا گفت هر کاری که میخواید بکنید اصلا میتونید منو به سنگ تبدیل کنید اما من با کسی به جز فیوردلیسا ازدواج نمی کنم. دیگه هم کلمهای به زبان نیاورد پری اون رو سرزنش و تهدید کرد و توریتلا از خشم 20 روز و 20 شب گریهوزاری کرد بالاخره پری مازیلا که از نافرمانی شاهزاده کاملا خسته شده بود با خشم زیاد گفت یا با دختر خوندم ازدواج میکنی یا هفت سال به خاطر شکستن قولت کیفر میشی. حالا انتخاب کن. پادشاه به خوشحالی فریاد زد. تقاضا دارم هر بلایی که دلتون میخواد سرم بیارید. فقط من و گرفتار این شلختی زش نکنید. توریتلا با خشم داد زد. به من میگی شلخته؟ تو کی هستی که اینطوری به من توهین میکنی تو پادشاه بدبختی هستی که زیر قولت زدی و با کالسکت که چند قورباغی قورقوری مردنی اون رو میکشن به هر طرف میری پری داد زد جر و بحث رو کنار بگذارید و اینقدر به هم نپرید حالا پادشاهنا ناسپاس پرواز کن و از اون پنجره بیرون برو تو هفت سال پرندهٔ آبی خواهی بود و در حالی که حرف میزد چهره پادشاه دگرگون شد دستاش به بال و پاهاش به پنج کوچیک سیاه و کج تبدیل شدند. در یک لحظه اندامی نازک مثل پرندههای کوچیک پیدا کرد که پرهای آبی روشن اون رو پوشنده بودند. نوکش مثل آج بود، چشماش مثل ستاره ها می درخشیدن و تاجی از پرهای سفید سرش و آراسته بود. همکه این دگرگونی کامل شد، کادشا فریادی جگر خراش کشید و از بین پنجره باز پروازکنان کنان فرار کرد و توریتلا و پریمازیلا خنده های تمسخور خودشون رو ودرقه پروازش کردند. ادامه داستان رو با همدیگه در قسمت بعدی پی می‌گیریم. سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادوی قصدهای باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه بستههایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده،